جراحای های روب محتا نامه بود از گهه قاستان فراوان بدو اندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی از او بحری برده هر بخردی یکی پهلوان بود دقن نجاد دلیل و بزرگ و خردمند و راد پجوهنده روزگار نخوست گذشته سخونها و همه باز جوست هر کشوری موبدی سال فرد بیاورد و این نامه را گرد کرد بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران فرخمهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خوار بگذاشتند چگونه سرآمد به بد اختری بر ایشان همه روز گنداوری گندآوری بگفتند پیشش یک, و یک مهان سخونهای شاهان و گشت جهان بشت دزیشان سحوت سخون یکی نام و نام افکن اون چونی یادقاوری شدن در جهان بر او آفرین از که و مهان نام خداوند بزرگ و مهربان سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عدید برنامه پنجرهای به محتب طبق معلوم معمول هر یک شب در خدمت آقای فریدون جنیدی هستیم آقای دکتر فریدون جنیدی خیلی خوش آمدید فریدون جنیدی سلام شاد،, علیکم. شاد باشید، پیروز باشید، درود بر شما شما شاد باشید، سلامت باشید ما از شما انرژی میگیریم، <تصال> ما شالله هر بار شما را می‌بینیم این انرژی و این تلاش شما، این حرکت شما، این شور و نشاط شما. به ما که امرژی... ما برای ایران نیان شادی بخوایم و توان بخوایم، به جای انرژی فرهنگی و کنترل بیشتر و با افتخار به گذشته پر افتخارشون راه روشن آینده رو بپیماید. انشالله. شما را تلفن. های برهم ما من تا یادم نرفته و سفارش همیشه آقای دکتر جنیدی هست میگم خدمتون شما با ما تماس بگیرید ارتباط برقرار کنید و سوالات خودتون رو درباری شاهنامی فردوسی بپرسید 220 485 220 485 220 58 800 220 58 800 شمایه پیامه که ما هم سی و و هست سی هزار پانسد و و هشت. خب آید رسیدیم به هفتخان و راز و رمزهای اون این صحبتی هم فکر کردیم من فقط کوتاه میگم که گفتن افثانه است یعنی تخمین بندی کرده بودن دفعه قبل که فرمودید خارجی ها اروپایی ها مخصوصاً گفته بودن همهش این افسانه است ما این مطلب خیلی کوتاهی خیلی دقیقه باید خیلی طولانی شد فرمودید ما تا الان بخوام خیلی کوتاه فرمودید و اشاره به این داریم که افسانه نیست تاریخ ماست با توجه به نگاهی که شما وجود دارید خصوصا هفت خانه رستم. بله از وقتی که تحصیل کردگان ما روی کردن به قبله خودشون قبله قرب یعنی اروپا خب برداشت کردن از نظریات اونها و چون تاریخ خیلی خلاصه و در همه مغلوط از جنگ و خونوزی و دارند اونها بر اساس کهانترین تاریخشون که تاریخ یونان بوده باشه و او اون روح هایی که به عنوان میت و استوره در یونان جریان داره گمان که میتونن که همین تقسیم بندی ها رو برای شانومه ما هم در نظر بگیرن. یعنی فکر بکنن که بخشی از شانومه استور است. این میت های میت هفته پیش هم ارز به زبان عوستقی یعنی دروغ. سخن دروغ. گفتار دروغ. به زبان یونانی هم همین محلی داره. ببینید اینا چه ملت آشفتهی هستن که میتولوژی دارن یعنی شناسی. و این 2000 رو خورده سال این دروغ ها رو درس میدن در دانشگاهشون و متاسفانه با یعنی در سرازی شدن اندیشه های غربیرایی در ایران اینها به دانشگاه های ما هم رفت پیدا کرد و ما هم در دانشگاه دردویاتون میتولوجی داریم متاسفانه خب ما نباید که با میار کج و ناقص و کوتاه غربی شاهنامه خودمون رو بسنجیم تاریخ ما خیلی خیلی پردامنه است و خیلی گرانقدره و هیچ گفتار نادرست و ناهماهنگ همه در اون نیمده. البته در جنگ ها و کارهای شده، بعضی شاهان کاره کردند، اونها همه شر داده شده. ولی به خصوص در آغاز شاهنامه که عربیان اون رو استوره میشناسند و فکر میکنند که افسانه است و نادرسته، ما بزرگترین اشهارات رو به پیدایی دانش و در حقیقت پدیده های دانشی و فرهنگی داریم که من کم کم در این جلسات اینها رو بازگو خواهم کرد اما اون داستانهاییم که در مثلا فرض کن که دوره پهلوانی به قول اونها گفته شده که اونا فکر می‌کنن افسانه است اونا هم همه واقعیت درست تاریخی از جمله ما هفته پیش درباره هفت رستم صحبت کردیم اگر به خاطر داشته باشید که سپاه ایران حالا سپاه که ایرانیان دیگه بله و بیام دارید حتما که اینا برای گرفتن چراگاه بالا کواهک گرفت حرکت کردند یک سخانه بود که بزرگان ایران به زال نوشته بودند که همینی گنج بیرنج بهگگذاراهیدش چراگاه مازندران بایدش این خیلی راحت روشنه که چراگاه رفتن برای چراگاه های بالابرزی میانی رو هم به در های مرکزی یا دست های تبرستان بی چر... کاملا روشن گفته چراگاه نه, نه هیچ چیزی دیگه بعد خواهیم دید که دیو هم همین رو خواهد گفت که که بدی رو از آغاز آراستی چراگاه مازندران خواستی من یعنی من فکرم دو تا کمون نکردین دو تا پرانپزه هم از طرف دیو سفید هم از طرف بزرگان ایران که میگن اینا چراگاهه من هفته پیش تمام درهایی که از مرکزی به تا از خوشلی ایلاغ شاغرود و بستان آغاز کردم تا در ریس همه اینا رو شموردم و همه اینا رو من رفتم و می‌بینم که همه اینا گویششون به گویش تبرستان و گیلان نزدیکه. نشون میده که اونا حرکت کردن. نه که از این ور حرکت شده باشه. در حقیقت ایرانیان روی هم رفته خواستند که چراگاه های الورز میانین رو به چراگاه های دستش های مرکزی بیافشن. خب ما سخن رو دنبال کردیم به اینجا رسیدیم که پادشاه ها مازنداران ها، اینم به شما ارز کنم که در این داستان ها بعضی چیزها ها آرایه داستانه و من این آرایه ها رو هم به جل خودش بازگو خواهم کرد. اینکه که وقتی که مازنداران رو گفتیم ماز یعنی چین شکن و کوههای ماز الان هست از جنوب شرقی دماغن تا پیروسکو من از یکی از دوستان که از اهل افتر هست که افتر یک روسوی خیلی است در همون در ریک سنگسر و افتر به طرف مازندان و تبریزان بالای, سمنا. با. بالای, بالای سمنان و سنگسر سن شنیدم که هنوز پیر مردان افتری کار خیلی مهمی اگه انجام بده میگن یعنی که از ماز بالا رفته یعنی ما ماز رو داریم هنوز و منطقه فراموش کردیم چینی چینیشگان همون کوههای ماست. بر هر صورت اینجا پادشاه مازندران آر روی چون بالاخره نورد نبرد بین ایرانیان و این مازها و این چینیشگان رخ داده لابد بعد صحنه آر روی بشه، از دو تا لشکر رو برو هم قرار بگیرن، بعد دو تا پادشاه رو هم رو برو هم قرار بگیرن تا اینکه بالاخره فص از آن و کدام است. به یاد داریم که پادشاه مازندران پیام فرستاد برای دیو سفید برای دیو سفید پیام فرستاد که اگر تو اقدام نکنی ما اینجا رو از دست دادیم این گفتار دیو سفید این بود چون این پاسخش داد دیو سفید که از روزگاران مشو ناامید بیایم بیاویم کنون با سپاهی گران ببرم پیش را زمازندران بگفتین و چون کوه بر پای خواست سرش گشت با شرخ گردنده راست. شب آمد یکی عبر شد تا به ما. جهان گرد چون روی زنگی سیاه. زگردون بسی سنگ بارید و خشت. پراکنده گرشتند ایران. ایران یعنی ایرانی. چون ایر یعنی ایرانی. در جمع میشه ایران و با الف نون نسبت ایران کشور ایران میشه. ده. توجه کردیم که نبرد دیوی سفید یه نبرد خیلی شگفتیه. یعنی شب عبر اومد. یا عبری تا ما و از گرگون سنگ و خشت وارید خشت شاید در جلسات نخستین گفته باشم که یک نیزهی بوده کوچیک و به اندازه یک بدست یعنی یک وجب که سر این نیزه بود و در انتهاهاش یک حلقه داشت و این حلقه رو به یک ذهر بستند و اون سر به ذهر رو به انگشتی میانی میبستن و این, زهر این رو وقتی که بین انگوشتان میگرفتن پرس میکردن زود میکشیدن میخورد به دشمن و زود برمیکشت و در شانه باز جای دیگه هم هست که میبینیم هومان پهلوان تورانه اماده بین دو صف قرار گرفته و گرفته یکی خشت رخشان به کف خب اینجا میبینیم شب آمد و از آسمون سنگ و خشت بارید و دیو سفید مانند یک کوهی بلند شد این ها همه اشاراتیست که من باید بشکوفم منطقه با واجه پسین به. من فکر بودم در, در بخش بعدی برنامه واجه پسین رو بشونم انشالله شما شنونده یه برنامه پنجره های روبه مهداف هستید شما تلفون های ما 220-485 220-485 220-58-800 220-58 58 هشتصد و شما می‌بینید که ما 3558 است. ما در باری شاهنامه احنا صحبت می‌کنیم، در واریش هفت خانه رستم صحبت می‌کنیم و رمز گشایی هفت خان رو آقای دکتر فیدونی جنیدی انجام خواهند داد. این بیوه سفید چه بوده چه راز و رمزی داره زود اومده بله بله خواهم گفت اگر زودم اومده باشید و شتابم برزه باشید تو با من. بل بل بل بر برای که باید بای بای بای ایرانیان بیدار باشد و بدونن که دیوه سفید چیه بله ما میدینیم که از زبانهای باستانی تا زبان امروز برسه واجه ها تغییر پیدا میکنه و این تغییراتش بر بنیاد یک قوانی که حاکم بر زبان ماست. حالا من مثلا یک واژه رو الان برای شما میگم. واجه در عویستا هست رعو چنگ. این واژه در نوشته‌های های فارسی باستان یعنی ها که تازه به صورت رعو اومده. و بعد این در زبان پهلاوی کوهن روج در زبان پهلاوی نور روش. در زبان فارسی دلی اساس اسلام روز و بعد در زبان امروز تهران شده روز ببین شما از ذروچنگ تا روز چقدر ذروچنگ تا, تا, تا روز روز یعنی روز. همین روز و حالا اگر برگردیم ب... من از شما میپرسم یعنی وقتی که از شما از جوانانی که دارن بله من بل. گوش می‌کنن در حقیقت می‌پرسم که در روز چه ویژگی هست که ما اسمونو میگیم روز آفتاب دیگه دردم داریم آفتاب میاد رو... مفهومش مفهوم آفتاب روشنی, روشنی. خب حالا میدونی که در خراسان و تاجکستان و افغانستان روشن رو میگن روشن شما روشن رو با روشنگ بسنجید ببینید که اونجا که مفهوم بود هیچ کم تغییر بده کرد اینجا که نام بود هیمارتب تغییر کرد تا به روز رسید حالا همینجا وای نستده بلکه در تهران قدیم من به خاطر دارم من با تهرانیان قدیم زندگی کردم بله اونا میگفتن رو میگن دیرو رفتم دیرو رفتم نمیوم شما هم حتماشین بله بله آره روح شده آره آمیانه ب... حالا تو چه بگم روح میگن بله یعنی در کوشانم رو, رو گفته شده حالا که اینجوری رو گفته شد دیگه پیوندش با روچنگ قطع میشه برای که دیگه این بخش پایانی که چه بود شد. و, چه و, ج. ج و شد چه چه دیگه از این رفته نیمه شد اما حالا یک نظر دیگه برمیگردیم به اینا نگاه میکنیم این که در پهلوی کهن بوده روج الان در زبان بلوچی هم روج میگن بله مونتا در زبان بلوچی اگه بخوام بگم امروز میگن مروج ج شد ا شد شو ژیشوچه ژیناشون ج بعد شو ج بعد شد ج بر موچ یعنی امروز شد. ج بل. شد. ام یعنی شده بله شد موچ م ام روچ یعنی خب ج شده بله حالا اون وقتی که بود روژ شد در زبان کردی روژ میگن اه روژه تا زبان کردی روژ بله بله حالا همونطور که واجه روز به روز بدل شد روز هم به روز بدل شده در کرماشان میگن روز روز کردی رو در کرماشان میگن روز روز روز آهنگش همه بله بله خب بازم افهل برمیگردیم بر به بعضی از اینا اونجا که روز بود معکوس شد مثلا شما واجه پره، پرهیز رو که در تیران میگیم پرهیز بر آذربایجان گفتیم شد با بود تلفظ درست پهلویه در آذربایجان چون در اون درسته بله در آوستر آذربایجان در زبان پهلوی پهرچ گفته میشه چه تعبیری میشه در آذربایجان درست میگن چه واجه‌های هم که پهرز میگن اون یا پهریز میگن درست دره بنابراین زبان واجه ها ممکنه که معکوس بشن مثلا فرض کن که واژه ملخ که ما میگیم در زبان ارمنی هست مخله و خوب. حال پرهیز تهران و مثلا خراسان و اسان در آذربایجان پرز شده بر عکس شده خب حالا که اینطوری شد واجهه روزژ کرمانشایی شد ژوق در زبان فرانسه ژور البته ولی خود چون غ تلفظ ژور میگن خب واجهه روج بلوچی که در مروج بود بر عکس شد شد جور نو در زبان ایتالیایی دونو. جورنو یعنی جورنو. روز. جورنو. جورنو یعنی روز جورنو یعنی روز آها اون چه علی برعکس روز شد جورنو بله روز شد جور و نو به اضافه شد فهمیدم خیلی خوب اونجا که روز بود ری قاب تبدیل به ل هست و ز قاب تبدیل به سه هست روز تبدیل شد به لویس در زبان ارمنی یعنی روز روشنایی حالا که به اینجا رسیدیم یه قاب تبدیل به ک هست در روز زمان البته همین امروز هم در این لحظه تعبیر نمیشه بله بله. در روز نوای زمان و در بین اقوام آریایی که ما اینا رو هم ایرانی میدونیم اینا هم از ایران رفتن خودشون البته ننگشون میاد که به کشور مادر خودشون برگردن و افتخار کنن همه میگن که ما از نژاد اسم به نام هندورپه‌ای که دروغ نام در دروردن فرهنگ دروخ توضیح دادن واژهای دروخ تا اینکه نگن ما منسوب ایران هستیم حالا ما در همین واژه بررسی میکنیم ام... که قابل تبدیل به یه هست مثلا در نیاکان و نیایان یعنی الان هنوز در فرصه هم نیاکان میگیم میدونیم که گونه دیگرش هست نیایان. یعنی که قابل تبدیل به یه هست و برعکس خب لویس ارمنی تبدیل شد به لوکس در زبان فرانسر و در زبان ایتالیای و اسفانیای یعنی روشن کسانی که فیزیک خوندن میدونن که همین الان هم مگه اون روشنایی لامپی رو مثلا لوکس روشن اون خودشون نمیدونن که از کجا اومد از راهچنگ افسویی میده نمیدونن اروپایی ها یعنی کو... از دیدگاه روانشناسان کودن دو جور هست یکی کودنی که پیرو هست یکی کودن... کودنی که متکبر هست ها به نظر من کودن متکبر هستن کاشکی بگن که ما نمیدونیم و بیام یاد بگیریم ولی خوب حالا به این ترتیب دارن زندگی میکنن. حالا بازم من میگم، همه شون نه. <تصفيق> یک فقط یک نفر به نام هاروردوال تل بیلی در انگلستان بود که یک مقدمه فقه حلوقه و کار خیلی وسیع کرد و بعدم گفته بود که هر دانشجو انگلیسی که بخواهد درباره زبان مادری خود نیک تحصیل کند، باید آگاهی های از کتیب آقای فرسی به دست آورد. فوری و رو خوبیدند. یعنی کتابشو جمع کردند ذام پخش بشه اعتداد پخش شد. همه اعتراض کردن. نه نه ما به ایران اعتباه دادیم یک وقت اومد راست گفت و کتابشم از بین رفت نیست ما در ایرانم نداره تو اونجا که منتونم درگاهتهران هم نداره یک نفر بود که راست گفت بنابراین من اینا رو مطالعه نمیگم یک سازمان سیاسی فرهنگی خیلی مخوف تشکیل دادن برای که با فرهنگ ایران مبارزه میکنه اون هیچ ترس از هندوستان نداره بلکه از جانب هندوستان هیچ دردی به سوی اونان نمیرسه از مصر همچنین خب مصر که تبدیل مایه ایران بود و بعد وقتی که ایران از اسکندر گوجستک یعنی ملعون شکست خورد اونان شدن میونانی بعد وقتی که ایتالیا و شکست داد. روم باستان اونان شکست شدن رومی بعد از اسلام اومد شدن عرب خب این مردم چه ترسی دارن؟ یعنی اروپا از اینا چطر فقط از شیر بیشه ایرانی که میترسن ایران بنابراین در یک اتحاد نامبارک خیلی بد فرهنگی سیاسی هر که میخونن علیه ایرانه برای ترسشونه در حصولت من به. اطلاعاتی که کردم در زمین فرهنگ اینه میگم و بل بل من ندیدم بل. بل من ندیدم که اینها بخوان یه چیزی درست در باره فرهنگ ایران بگن و همه چیز رو ناقص بیان می, می بینیم که از راوچنگ ما چه نام تشکیل شد کم کم در مروز زمان با وجود اومد و بعد چطور در جهان آریایی پراکنده شد بله. وقتی که ما این واجرشه گفتیم حالا یک نفر اگر مثل یک شنگی که از کوستان از صخره کنده بشه با آب رودخونه بیاد سابیده بشه بشه سابی تا بیاد تو دشت اگر یک زمیشناص ماهر باشه توی این دشت این ریگ روبر میداره از رنگوش، اینو میتونه بگه که این ریگ از فلان سخره بالا گوستان کنبه شده به دلیلی که این خواست اونو داره شکل اونو داره رنگ اونو داره همه اینهایی که من گفتم یک زبان شناس میتونه بدونید که چاره نیست با قبول کنیم که همه اینا درسته و ریشه همه اینها ها روچنگ هست نه. به این ترتیب واجه ها تغییر پیدا میکنم دو ادامه بدم بیاین که کنید فقط چون یه تعداد پیامی اومده برامون که اینها رو من الان خدمت شما میگم که دوستی گفتن که درود به استاد جنیدی آیا مادر اسکندر ایرانی است و اینکه اختیاری ها همینک به های بلند و چین و شکن کوهپایه و نیز به کمر انسان مازه ماز میگویند با سپاس علی, علی, عباس علی عباسی دشتکی از دشتک چهارمحال وقتیاری به ایل وقتیاری که نگاهوان فرهنگ ایران هستن و هر وقتیاری شما می بینید انگار که یک نماینده برای, برای ایرانه این قدر که اینا ایران دوست دارن و شاهانه ما می خونن. من پدر بزرگی و پنج سال شون میخون نوی 15 سالاش داستان روسم سراب میخون سنگ گریش میگه از این آواز این بچه و بله موز هست در وقت هم هست و منته با باید بدونیم که از اون بخشی که دارا از اسکندر برای بارس سوم شکست میخوره از اونجا به بعد اینها همه افسوده است و اینها افسوده به شاهنامه است نه چنین نیست و ما حالا کم کم بررسی خواهیم کرد از اگر چی در پیشکفتای شانومه همین رو به گستردگی بررسی کردم نه اون روشنک اینا افزودی به شانومه هست دوستی از مازندران مثل اینکه که حالا بر اون پیمه مگذدم سلام خسته نباشید آقای دکتر جنیدی هدایتی ما صدای شما را در مازندران نداریم الان دو روزه متاسفانهیم امروز مثلا حرفشه مازندهره حرف بله، من چند چندبار چدم در بابول یکی از های دکتر مشکل بود با نمیسی نش حال ان درست بکنم مسئولین فنیه در <تصفح> این فنی ما سلام دکتر مانده نباشید درماننده نباشید این می زدن ص۹صد سیزده شماره بینش رو نمیکنم صفر نهصد و نه و و دوست دیگهی با این شماره پیامک 916 شماره بینش رو نمیخونم سه شماره بینش رو 7291 سلام شب بخیر چرا هفتخانه چرا هفتخان نه بیشتر نه کمتر نه ما در باید تمام شاهنامه فیل دوستی صحبت میکنیم بله و فیلن حالا هفتخان, هفتخان و دیگه سلام خدمت شما فرستادن های دوی تو خسته خط گفتند خانم زهرا کازمی و دیگری من باز هم یه خود فاصله میفته ببخشی یه خود کنم بکنم این درست کارو بزنم اه اه این گفته که ببخشید زم ببخشید یعنی شما میخواهید بگویید که زمانی رستم رستم وجود داشت و زندگی میکرد رستم نماد برطری سیستان و نیروی سیستانه و شما این در بسیار مبرتها هست و گاه نیست. و بنابراین لابود اون رستمی که با رستمزاد به دنیا آمده زندگی می کرده. منطقه همطور که ارز کنم نام رستم نماد برطری نیروی سیستانه. گفتن خانومی که سلام دایتی لطفا بگین که یک جغرافی ایرانی ثابت کرده تا سال قبل نصر نهار ابتدا تو سیستان ایران بوده نه لندن اینطور بوده نه 4500 سال نیست و حدود 5000 سال پیش ایرانیان جهان شناخته شده اون زمان رو که آسیا و اروپا و آفریقا بود اینا رو حمر پی بودن اندازه گرفتن از شرق ژاپن، یعنی شرقی ترین جزایر ژاپن، تا غربی ترین جزایر کانوری که به خالداد گفته شده اندازه گرفتن این درست 180 درجه بود و درست میانه 180 درجه نیمروز ایرانه و این افتخار ماست یعنی ایران به این ترتیب تخت جهان و پای تخت جهانه این اصطلاحات ناظر که اروپا برای ما درست کردن خاور میانه یعنی چی ما مرکز جهان هستیم. خوشبختانه ابورهان بیرونی بیشتر از اینکه به قول اینا بخونن که برن تا هندوستان رو پیدا کنن وسط رای زمینی رو دیدن. ابورهان بیرونی 950 سال پیش میگه که زمین به این دلایل کورویش که از کورویکی چند هزار سال پیش ایرانیان میترسن و به این دلایل اون وره این کورام خاک وجود داره و به این دلایل اون خاک اونور از اینور کمتره. شما نگاه کنید که با یک دانشمند ایرانی با چشم به خرد خودش قاره آمریکا رو دیده. چند سال 500 سال پیش از اینکه اونا بخوان کریستوف کلمب بره و بقیه آمریکا رو بس بسپوسی برن، این کارا رو بکنن، اینقدر گوشت دار بکنن بیچاره سرخپوستا رو بمیجا. بله، الانم که اونور کره پیدا شده باز هنوز تخت جهان رو پایتخت جهان ایرانه سر بلند بداریم به آسمان ایران نگاه کنیم، به کوهستان‌های ایران نگاه، نگاه بکنیم بله، ایرانیان اینجا تشخیص دادم که پایتخت جهانه با سلام اگر می شود از آقای دکتر جنیدی بپرسید پهلوان خراسان بزرگ در شاهنامه کیست با تشکر از برنامه مهتابی شما. پهلوان بزرگ شاهنامه توسه ولی بیشتر از سوس در زمان ام... پهلوان بزرگ خراسان. خراسان بله. ام... خراسان گفتم شاهنامه؟ بله بله. به همین دلیلی که ما کنار ام... تورانیان بودیم توس هم سپهسالار ایرانم هم بود همواره. می بینید که جایی کهقیت روهام با اشپوس نبرد میکنن و اشپوس روحان رو به سطوح میاره. می بینیم که قلب سپح هم برای شفت توس بذ اسب بایدت بر اشپوس تنگ براش شفت و با توس گفت که روحان را جام با دست جفت به میدر همی تیغ بازی یعنی تیغ شمشیر. می کند یعنی تغ وززی شمشیر. همشیر. میگهد در بعض حص و داره تیغ بازی میکنه میان بیاان سرفرازی کند تو قلب سپح را با بدار من این یک پیاده کنم کارزار وقتی یه میره و عشق بهش میگه که تو چرا پیاده اومدی تا شکست میخوری گفت پیاده مرازان ترستا تو که تا عصب بستان آمد عشق بوست که تو سپسالار خراسان و سپسالار ایران هم بوده منطقه در زمان که خصوص سپسالار ایران به گودرز گذار میشه که سپسالار کردستان و آزربایجان و لورستان بوده و در زمان گشاسپیان لوهراسپیان زریر و بستور ایران سپاسپاد بود قبل از اینکه توس یعنی بعد از اینکه توس از سپاه سالوری جایگزین شد زریر و بستور سپاه بود مثلا از بپرسید آیا در نمائشگاهی کتاب با عنوان بنیاد نیشابور غرفه خواهند داشت یا خیر با سپاس در نمائشگاه کتاب با نام نشر بلخ مؤسسه نشر بلخ ما برفه داریم البته امروز من فهمیدم که یه برفه کامل به ما ندادن نیم برفه رو تو چهار متر ولی چک کنیم دیگه به نام نشر بلد شرکت خواهیم شما شنونده برنامه پنجره های رو به مختاط هستید و امیمان عزیز ما آقای دکتر فیدون جنیدی درباره شاهنامه فردوسی صحبت می کنند تلفون های ما 222-400-85 222-58 800 شما ده پیامک ما ۵ حال ام شبتون به خیر خسته نباشین شاید باشین ایناءله هم میشه. خواستم که سلام رو گستاد برسانین که از جون تاال بفرمایین که. چند سال طول کشید که فردوسی شاهنامه رو نوشت درود بر شما پیداست که سی سال طول کشیده و خب مردم ایران اینو می‌دونستن نکنه فکر نکنید که اون بیتی که با رنج بردن در این سال سی این از شاهنامه باشه این از افسوده هاست افسوندهگون اینو درست کردن برای که سالسینا درسته در زبان فارسی همه های آریایی وقتی که بشمریم اول عدد رو میگیم بعد معدود یعنی شما اگر به کودک بگید گردو پنج او به شما میخنده. سالسینا دو بوم. عجم یعنی کودن گنگ بیخرد و هیچ وقت فردوسی به ایرانیان چنین خطاب نمیکنه. همه جا فردوسی از ایرانیان یا با نام ایران یا با نام آزادگان یاد کرده و این شعر به این دو دلیل از شاهنامه نیست افسوس است آموفیروس که 3 سال کار کرده از سال 670 هجری آغاز کرد در سال 400 هجری به پایان رسید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارکنان برنامه رادیو فرهنگ و همچنین جناب آقای دکتر جنیدی درود و را باشرز میکنم این خشی که از جیب سفین میاد این آتش پشتانه دیگه حالا الان یه های دکتر از خوان خواهند گفت من اعتقادم برای این است آتش پشتانه من ملکی هستم از تهران مزایر میتونی شدم روز شما اگر شما کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان رو نخونده باشید و این حس زده باشید آفرین و ستایش بر شما به زودی همین جریان رو من خواهم کن. ده های دکتر جاندی بپرسن قبل از اینکه ایرانی وارد ماتندران بشن ساکنانی هم قبل اونجا بودن یا نبودن با سپاس خواهد درود بر شما این خطه زیبا این خطه زیبا بهشت ایران نام تبرستان بوده همواره تپورستان و تبرستان مازنداران فقط این ارتفاق بوده و پدر آریایان جهان فریدون پایتختش در در تبرستان بوده از آمود گدر سوی تمیشه کرد نشستم در آن ناور بیشه کرد کجا که از جهان کووس خو همین جزی نیست نامی ندانی همین من در وقتی که ۳ سال پیش که زندگی زندیم روزاتم شب خیلی اندوهگمند بودم که این چرا این نام با پایتخت آرییون فراموش شده بعدن که تحقیق کردم دیدم دو تا روستا در نزدیکی هم در نور وجود داره یکی کوسمله یکی کوسزر اینها بقایای اون پایتخت نخستین پایتخت آرییون پس از بیروزی بر بابلیان و زهاک بوده بله منتها این انقدر بعضی از مردم مثلاً این داستان رو فکر کردن که باید حتما دیو باشه ها فکر میکن یه کارهای از هنوزم دیوا هستن نه اینچین نیست این امشب موضوع روشن میکن گفتار رو ادامه میدیم با بررسی واجه ها چون این ها این زندگی واجه ها و تغییر یک تاریخ خیلی عظیم نبفته است همطور که درباره واژه واجه روچنگ من گفتم خب حالا یه واژه مثل سیا رو در نظر بگیریم که خی و شه وقتی که پلو باشه اکثرا با اینکه که لطیفتر هست با این خی زخیم رو میرانه از واژه بیرون میکنه مثلا سیاوخش بوده اول حالا ما میگیم سیاوش یا مثلا آتخش بوده حالا میگیم آتش آتش یا آتخش آتخش بوده برای. یا اینکه که اخسره بوده شده اشتر میبینیم خیلی شگفته که خیلی و شه خیلی لطیفتر همون میبینیم که در زندگیشون شه لطیف خیلی در حقیقت زخیم رو بیرون میکنه از واجه این, این یک مهند از گفتار دوباره که بعضی از واژه ها ممکنه که یه تغییرات بده کنه که همون در واجه, با... واجه روچنگ من این رو هم رو گفتم دیگه چنوندگان خردمند ما و در حقیقت تیزبین ما دیگه خود حدیث مفصل از این مجمل بکنن خالا بعضی از واژه‌ها مثلا فرض کنید که این واژه‌ای که ما داریم الان ایو... یک داریم این واژه در پهلوی بود اوک از در عربی بوده ائه و بعد در پهلوی تر شده شده ا و کم بهش اضافه شده یعنی این که مثل یه پایان بندیه که واجه رو تموم میکنه. ائه و مثل که تموم نشده در پهلوی شد ا ایو... ایو... این اوک وقتی که به فارسی اومد وش افتاد شد یک که امروز حالا ما میگیم یک در خراسان خیلی جه ها کردستان یک میکن بر. یک واژه دیگه در پهله بوده ایوپ ایوپ کم کم شده ایاب بعد پیشم افتاده شده الف اولش افتاده شده یا بنابراین این دو واجه که من گفتم در یک از اینا و افتاد و در یک از اینا یه افتاد بله. خب یه واژه داریم که در متاسفانه در هیچ کدوم از فرهنگ های موجود فارسی، از دمان و یعنی از فرهنگ فرسوی اسدی توسی بگیریم تا امروز فرهنگ امروز این واژه در هیچ فرهنگی نیست اما روان بیدار نیاکان ما اینو در یک کتابی زنده نگه داشته این واژه هست دوین دوین در اه, کتاب تاریخ تبرستان ابن اسفندیار دو بار ازش یاد شده اه, دوین دوین خب این رو حالا من یک بارش رو برای شما میگم و باید از شما پوستش میکنم خوش امیدارم نمرتون هیفدنش نه خطمان کم میشم <تصفح> <تصفح> خب میگه که همه ساله اسپخبت فرخان اسطاپات روشید برای شکار و شراب به زیرتر دوینی رفتی که کاخ اسطاپات اسپه... فرخوان بود دوین از دوین اینجا چی میفهمی شما دوین میشه به زیر دوینی زیرتر دوینی رفت که اینطوری بوده پایین یک جایی باید دفنه باشه دیگه خب یه مکان داره که زیرتره که داریم میگیم بله. پس اون دوین چی میتونه باشه اون فکر کنم یه بلندیه آفرین نظرتو camera شو از اون یکی اضافه شده است مثلا در خلخ ام پاستوین یعنی بولانتی جنیکو یعنی او و اگر این دوین یهش چی تبدیل میشه به دین اگر ام ووش میوفته که من درباره ایوک و یک و ایو ایوپ براتون می گفتم تبدیل میشه به دین و بگم امروز یکی از یاران بنیاد در ساری سی و پنج سی و چهار تا دین پیدا کرده که اینا همه تپای بلند اینا به همون نام دین حالا دینی که نزدیک به فلان روستا باشه بل. میگن دین مثلا فس کن بالا کلا مثلا همچیز چیزی بل بل. و البته من این شخصی که این کار کرده نامی در کتاب داستان ایران خواهم آبود الان بیاد ندارم بل. و من یک بار که رفتم سخن رو ساری اون وقت درباره همین بین این ها صحبت کردم برانگیخته شد گفت ما سی پنج چه مقدار زیادی دین در مازندران داریم؟, داریم که من اینا برای شما خواهم فرستاد پرستاد در کوه بلندی ها به بلندان میگن دین خب حالاگونه دیگرش چی میشه؟ دیو یعنی اگر یه نونش بیفته میشه و دیو های مازندران یعنی کوه های مازندران خیلی ساده است حالا ببینید که بلندترین و بزرگترین دیو مازندران دیوان مازندران کی بود؟ دماغند بود؟ بلندترین بله. و چی کرد؟ برای مبارزه با ایرانیان شب آمدی ای که عبر شد تا به ما چون روی زنگی سیاه اولی که بگفتی اینو چون کوه برپرخواست خودش داره میگه دیو سپید کوه. متاسف هم به هزار سال متوجه نشدن متوجه این واقعیت نشدن دیو مانند کوه کو و سرش کش با چرخ گردنده راست یعنی به اندازه ایت بالا و با این دماوندی که سرش رفته بالا و چرا دیو سفیده شما بفرمید فکر کنید برای چی دیو سفیده بلند برفت همیشه برفت بله. داره ویوای دیگه هم سیاه میشه این یکی سفید همواره هم بلند بزرگتر از و هم هموار سفیده بنابراین دیو سفید رو و شیده ای کارش هم اینی که می‌بینیم که عبر تا به ماه رفت و جهان گرچون روی زنگی سیاه رگردون بسی سنگ وارد و خشت پراکن بگشتن ایران به دشت این نشانه یک بلیقت فعالیت مجدد آتشوشانه که اون کسانی که اون اطراف بودن از این سنگ و خشت و آزار دیدن و خوشش شدن و خلاصه این منجر شد به این که مثلا ایرانیان از دیوی سفید شکست خوردن فعالیت مجدد دماوانده البته دماواند خیلی فعالیت رو پیشین داشته که هفتزار سال پیش آغاز کرد تا 6000 سال یک فعالیت کرد که من نمیدونم اگر نگفتم در جریان بابل و زهاکینا اینو باز دو مرتبه بهش خواهم نه نه نه رسیم اینو بعدم بهش می این یه فعالیت کوتاه مدت بوده و آقای دکتر بربریان بزرگترین لحظه شناس جهانی و یکی از مطرحترین زمینشناسان جهان که هم نخستین هموند بنیاد نشابور بود ایشون در کارهای زمین و این مقاطع اینا با یاری آوری کرده اون قسمتی رو که دماوند همراه با کاسیان یا کاسپا فعالیت مجدد کرده شناسایی کرد در قسمت شمال قرب دموانده که یک مقدار زیادی سنگ و توی خاکستر ریخته خب اون سنگ هم و همون سنگی که در شانه مومده خاکستر هم اون آتش که به صورت خشت دیده میشود همین دوست که گفتن خش گفت در خب برحقب این کار پیدا شده و برحقب فعالیت دموانده هیچ چیز دیگه نیست ببینید که چقدر کار شگفته حالا در بخش پسین من درباره باره صحبت صببت این آراعه داستانه آراعه داستان اینه که بر اینجا کابوس می‌بینیم کشته شد یعنی به زندان افتاد خب دل. اما باز کسیان هستند اون سلسلهی که فرمان روی بر ایران میکنه تصمیم کاسیان یا کابوس هنوز زنده است پس نتیجه این میشه که باید یک قهرمانی که بره اینا رو نجا، ایرانیان نجات دوده کی شایسته تر از رستم رستم میشه اون وقت در هفت خان من اینجا گفتارهای خانم داشت که در بخش پسین به عرضتون هم رستم نماون فاقیت مجزد کرد ایرانیان آسیب دیدن یه جور مبارزه با طبیعت من احساس می کنم وجود داره حالا از این نگاه اگر وارد بشیم رستم الان وارد مبارزه می خواهد بشه که نخست یک کوه دماونده در مبارزش که حالا میگیم دیو سفی این, این طور هستش بله حالا من قبلا در باره هفت عدد هفت باید این عدد هفت در نصد ایرانیان بسیار گرامی هفت هم همچن بله برای که ایرانیان وقتی که پی بردن که برج های دوازده است که خورشید از میانونها اونها حرکت میکنه و دوازده ماه رو تشکیل میده در سال البته دوازده برج من به خاطر دارم که روانشاد مادرم هر که صحبت تاریخ میشود میگفت مثلا میگفت 15م میگفت 15 برج یا 15م ماه, ماه. بعد بله. این دوازده برج رو شناختند و بعدم هفت سیاری هم داده خوشیدی رو دریافتن اینها برمیگرد به زمان جمعشید من من بر این باره گفتم یا نه که یک سرمایه در جانان رخ میده، چه سال پیش تا 10000 سال پیش ادامه پیدا می یعنی 4000 ۴ سال یخنددان چون 4000 سال یخمدان بزرگترین آرزوی ایرانیان همواره اینه که چشم به آسون که کی میاد و بالاخر خورشید و بعد ماه وستاارگان حدود 8000 هزار سال پیش با مقاطع که ما پیدا کردیم نوروز شناخته میشه. یعنی بگیریم شما از آغاز اون بروز سرما که میگن ورم چار چارده هزار سال پیش باشه تا 8000 سال 6000 هزار سال نیاکان ما به آسمون نگاه کردن. خوشید نبود؟ خوشید می میامد البته. خوشید آسمون هم ستارگان همون. بالاخره این طول مدت که 6000 هزار سال نگاه کردن دوازه. برژ رو و هفت سیاره هم من به جای سیاره ستاره های روان به جای سوابت ستاره های ایشتا پیشنهاد کردم خب بنابراین اینجا هم عدد دوازده هم عدد هفت در نظر مقدس شد پس از اینکه که کیش مهر اومد اون هفت رو نگه داشتن و هفت زینه یا هفت پایه یا هفت دلیجه ی کشی مهر هم اونجا در حقیقت به رسمیت چناخته شد که کسانی که به آین مهر میپیوندن باید از هفت زینه یعنی از هفت پایه و درجه بگذارن تا به مرحله بالا برسن ده. پس از اینکه اندیشه زرسوشت اومد او خداوند رو که او را بود برای شش صفت در نظر گرفت که این شش صفت که اندیشه نیکو نه،, نه نه نه اندیشه نیکو اون زیبا برترین زیبایی برترین زیباروی قبلا گفتن بله, بله. تا بیماری امر امر ساسا که امورداد شد بیماری اینا این شش صفتو بعدا ایرانیان روی اون دوستی که با عدد 7 داشتن کم کم اهورامزدا سر این شش تا صفت گراشتن گفتن همش، هفت امشسپند بله پس از اینکه اسلام اومد وقت هرکس یک پیشنهاد داد مثلا ما داریم از خواجه عبد انصاری که بین انسانی که بخواد سفر کنه به طرف خداوند صد منزل قرار داده یک کتابش هم چاپ شده الان صد منزل از خواجه عبد الله این در این صد منزل از هرکونو یه آیه قرآن رو برده که مطابق اینا باید عمد کنین تا به آخر برسیم به خداوند میبینیم که سوره بعدی چهل از چهل منزل صدا و اثر از هفت شهر صحبت میکنه هفت شهر ایش. بالاتر از همه اینا شخصی است به نام عزیزالدین نصفی که مرد بسیار بزرگی بود و متاسفانه جایگاه پایبوش کم شناخته میشه او یک بیانی داره خیلی زیبا یعنی هر کس میتونه بفهمه که این درست گفته یک قدم بر نفس خودنه یک قدم بر کوی دوست هر چی بینی دوست بین با اینا آن کار نیست یعنی یک قدم کافیه یعنی خداوند رو همه جا ببینی در همه چیز ببینی حالا جالب اینی که اتار در سن جوانی این هفت شهره یه اشاراتی بهش می‌خونم، چون می به هفت برسیم بله بله بله بله. این که میگه که اول طلب وادی طلب. خب، طلب خب چی طلب؟ طلب چی؟ وقتی که موضوع نداشت چه طلبی؟ بعد بعدن میگه اشق خود اول بده عشق باشه تا بعد طلب پیش بیاد میبینید که اینجا الان عطار جوان اینا رو به شما بگم که من یک کتابی در دست دارم که بعد از اینکه داستان ایران به پایان رسید درباره عطار و چهره عطار رو نشون بدم به ایرانیان که یکی از بزرگترین اندیشمندان جهان بوده ممتا نه در گفتارهای جوانیش مثلا چهر پنج سالگی تا پنج سالگی حالا شاید شما بگید که 50 ساله که جوان نیست ولی وقتی عطار صد سال عمر کرد قرار ولیناتم بود از ات ببینیم عطار صد ساله چی گفته نه عطار پنج ساله که در مثلا تفسیر الولی عاش نشون میده یا در مثلا اسرار نامه خودشو نشون میده این کار رو من بعد از اینکه دو... کتاب انجام بگیره یک کار دیگه برای خیام دارم که چهره واقعی خیام رو بر اساس اندیشه های فلسفی و ریاضی او میخوام معلوم بکنم به امید خدا حالا اون میرسه حالا اینکه دارم نقد میکنیم برای اولین بار هیچ کس می‌دونم فکر کنیم Mathf چون حفشر عشق همچین توی قلب و روح و جان ایرانیان دمیده که کسی نمیتونه با اون مخالفت کنه. خیلی خوب، طلب بود بعد عشق میاد، نمیشه همچین چیزی. اول بود عشق میاد بعد طلب بیاد خب؟ تا با... می‌رسیم آخر به بز... جای می‌رسه که فقر فنا. خب فقر فنا اون بهتر یا امر اخساسا یعنی پی... یعنی رسیدن به بیماری و جاودانگی؟ می بینیم که اون بهتره یکی بهتره بنابراین عطار بر جوانی وقتی هفت شهر عشق رو گفت به قدر ایرانی ها به این هفت شهر چسبیدن که نمیشه ازشون جدا کرد ایرانی اصلا مثل این مثل ناموسی شده میگنه حتما هفت شهر عشقه در حال که یکی ای اینا رو بشموریم میبینیم که اینا درش چیز هست پس و پیشی هست و بعد خود عطار و پیرین یکی رحراب راه تو است. وقتی که خود عطار میگه رهل و راهاتو و از اول واسه است. در پیوی پس بنابراین رفتن از این هفت شهره درسته. یعنی در حقیقت عطار همون سخانی رو میگه که عزیزتین نصفی گفت خب؟ یک قدم. قدم خب بعد ها میبینید که سعدیه میگه دوست نزدیکتر از من به من است این عجبتر که من از وی دورم با کتاب هم گفت که دوست در خنار من و من محجورم این می‌کنم با که گفت که دوست در کنار منو من مهجورم من از روی گفتار عطار پیر با صدق به بسنجیم این درسته و بعد در همطور که من اون شعر رو خوندم که راه رو به اول واصل است اشعار دیگه در عطار هست که نشون میده که نه هفت شهر نیست و راه پیمایی لازم نیست از این کوپ اون کو رفتن هیچ کدوم از اینا نیست و انسان از همون اول واصل هست به خداوند یعنی آفریده خداونده اگر پیوند خودش رو همون اندازه که یک آمیب پیوند خودش رو با خداوند می ما هم پیوند خودمون رو با خدا بشنسی می بینیم که خداوند در نفس ما در اندیشه ما در جان ما در خون ما در رگ ما در آسمان در زمین همه جا جاریز همه جا فرمان اوست به فرمان او هست که این دل من میتپه و نفس من بیرون میاد اگه فرمان او ده ثانیه نباشه مغز ما از بین میره قلب ما از قربانی است چطور ما همه این همه ها شگفتی ها رو در فرمان و خداوند که با جان ما همراحت اینا رو نبینیم و خود عطار هم در حتت گرد کردن در پیری خودش اینا رو رو کرد Thank <music> you. استاد از عت دارم لازم دیلم خاطر نشان کنم همگوونه که پر آن ادایی ادهی برای بشر است شاهنامه هم فرهنگ بشری برای بشر است وتر ن شاهنامه را فردرشی به درستی یککس می کند که قدرت حرف اوبلزار می کند. خدا خدام است، است ما چکت همین شما. می کنمم خدمت شما عوامل خوبه برنامه پنجره رو به من از استاد جونیدی سوال داشتم استاد اگه فردوسی تو شاهنامه رستم رو یک شخص کامل اوستور بیان میکنه. چرا وقتی بار اول سخرارستم رو بر زمین میزنه رستم از روی فری میگه که ما ایرانی ها در جنگ اگر کسی بار اول بر خورد بلش فرصت میریم فرصت دوباره. حالا تو به من فرصت بده تا دوباره باد دو به با در صورتی که چون دست می وجود نداره من این سا رو از استاد داشتم خسروانی هستم از خوارم و باتم ازم خود با تشکل درود بر شما تلفن نبصی که پاسخ نداشت و برداشت در یافتیش بود در باره شانومه درسته اما درباره پستی پرسشی من امشب عرض کردم چندبار که رستم نماد نیروی سیستانه در اون جنگ که میبینید پیادگان سیستانی یعنی کشتی مخصوص پیاده هاست پیادگان سیستانی در نو... نبرد نخستین درقیقت شکست میخورند و بعد تجدید قوا میکنند در نبرد دوم پیروز میشن منتاها این آرایه داستانه که اگر یک نبرد پیاده تبدیل بشه به گرفتن دو پهلوان پس بنابراین در روز اول این میگه که باید به با من وقت بدی و خواهش میکنم رستم نماد عزت و شرف ایرانه چطور شما دلتون میاد که نام فریب رو همراه با او بیارید من خواهش میکنم توجه کنید به این مطالب آیدیشو ادامه صحبت درباره باره خان در... خب پس بنابراین هفخان اتفاقا زمانی که ما به یک عدد هفت نیستیم این زمان کیش مهریه که بس. اتفاقا هفت خان باقی بوده یعنی هفت پایه در اینجا بوده بس. منطقه رستم انتخاب بشه برای این کار چون پهلوان سیستان و پهلوان ایران هست و کاووس نامه می نیسه آرائه داستان اینا همه بس. نامه می بزال و بزال میگه اگه اگر دست نگیری و من پندهای تو بیاد میارم و واقعا از جگر سرد بادو میکشم و یعنی آه سرد میکشم چرا به راهی که تو گفتی من اشاره کردی من نرفتم خب حالا ما اینجا گرفتار هستیم اگر تو اقدام نکنی و رستم نیاد ما جان ما رو تباخ شده بگیم نه. زال به رستم یکی آماده باش که باید این کار بکنیم بکنی و رستم از اون پرسی که از کدوب راحبت برم میگه دو راه هست که یکی از این راهها شش موب میشه و یکی از این راه ها که به دو هفته پایان میپذیره و تو این کوتاه رو بگذین و چگی ببین. این مسیر کوتاه رستم حرکت میکنه به یاری از دان و به راه میفته این حرف خانه خان نخستینش اینکه این و خب باید تلاش بکننسون که یعنی گرسنه نشه و اتفاقا در فرهنگ ایرانی خوردن خیلی خوب بوده و شما می‌بینید هنوزم که هنوز انقدر خوراک دادن در جشن‌های مذهبی و در برای درگوشتن اینا هنوز به آینه یعنی ایرانیان هنوز اصرار دارن ببینن که برای درگذشته یا برای آین های مذهبی بدن مرد بخورن بله غذا دادن به مرد بخورن فرهنگ کشاورزی ایرانی بله در عربستان چه نیست این عربستان که کسی میمیره تو رگش میکنن تموم شد خدافس این بل. همه هفتون بگیره چله بگیره سال بگیره مولدف سال به سالی فرزندان خودشون موضعف بینن که خراس شدن این از آینه بنو کی... کشی بل. بل. مهر بله بل. پرسیدن مهرگان دینه اوست تن خوردن آیین اوست. یعنی باید انسان بخوره. و در زمان باستان این بوده که وقتی که بین دو را قرار میکنن یکی نیاییشی که خوردن بایدن اول تنی بعد روانی. یعنی به تن باید برسیم. بنابراین این که میبینید که رستن گور رو شکار میکنه و آتش میکنه و کباب میکنه و میخوره یعنی این که باید انسان سیر باشه. یعنی این که این انسان داده، این میلیارد تا سلول خودشون که دست و پا ندارن که حرکت میکنن اینا رو باید اون خوراکی رو که خداوند برای اینا مقدر کرده ما برسونیم اگر نرسونیم و آسیب و آزار به این اجزاعتن برسه و اون سلول ها اینا برسه یک کاری ما کردیم که خلاف آفرینش ایزده خداوند میخواد که بونو اونها آب برسه به موقع آسایش برسه خوراک برسه. این که تناسانی و خوردن آیین و آین آیین فریدونه. ما در هفت خانه رستم وقتی هستیم که کیش ایران اصلا کیش مهر بوده. خب این خانه نخستین که در حقیقت مبارزه بود. برستگیم برستگیم بود. بعد از این که رستم گورو چیز کرد و بستر خواب درست کرد و و خوابی رخشم چمان و چران رخش در مغزار میچرید و رستم خوابید در اینجا یک شیر پیدا میشه که کنامش اونجا بوده و میاد میبینه یک خفت است و برای او همه که عصب آشفته دید و آهنگی اینا میکنه آهنگی اینا میکنه اول فکر می با اسب مبارزه کنه و به طرف اسب میره خب عصب رخش رستمه بعد او پهلوان باشه تو توی عفظ که بسونه پیکر رستم رو هم رو کنه. و بعد دو دستش رو بلند میکنه توی مغز شیر میکوبه و شیر رو از بمیاره. رستم اینجا از خواب بیدار میشه. رستم از خواب بیدار میشه و می‌بینه که شیر بیچاره شد و رخش پیروز شده. بعد به رخش میگه که ترا ایزد از بحره. مرا از بحره جنگ آفرید تو را از بره زین و تنگ آفرید. یعنی تو از در یعنی سزاوار شایسته تو سزاوار و شایسته این هستی که زین بذاره رو داره سواری, سواری بدی اگر تو اینجا کشی شدی من چطور میرفتم به موازندران مواظب باش بعد از اینکه خطری پیش اومد منو میدار, میدار کنی این به. خانه دومه مبارزه با سختی های طبیعت خانه سبوم میرسن به یک بشتی خوشک بوده هیچ آب باید گیاه در اونجا نبود خب بالاخره یه مدتی انسان در دست خوش میره کم کم تشنی میشه دیگه هم نه. رخش تشنی میشه هم رستم به جایی میرسی که دیگه رخش طاقت بردن رستم رو نداره و رستم پیاده میشه از رخش این که به جانوران باید مهر ببرزیم این در حقیقت اندیشه زمان جمشیده که ما داریم که در ده پندی جمشید داده یکی از اینا که جانوران رو مانند فرزند دوست داشته باشه بله البته الان نمیدونم شما چوپانایی که واقعا نیا, نیا, در نیا همه چوپان بودن دیدین یا نه واقعا عشق می‌فرستن به کوسفند یعنی واقعا فکر می‌کنن فرزندشونه این یعنی یادگاری دوران جمشیدیه و خب بالاخره وقتی که سوار می‌بینی که اسب نمیتونه اونو بکشه بعد پیاده بشه بله یعنی تمهید کارها و نقشه های زندگی تا اینکه رستم می‌بینه که یک قرم داشتی یعنی میگه که میش یک بز... میش دشتی همهاتو به این نواخ کرد و حرکت کرد و رستم با خودش میگه که در این دست جایی میش نیست و اینها خدا این کجا پس از کجا آب میخوره پس من باید دارم آبش خوره این رو پیدا کن جوپین در دست جوپین میزه کوتاهی بوده یک در یورش خواب می دو بوده. این یک بوده در دست مثل دستوار. دستوار, دستوار. دستوار. دستوار یعنی اصا. دستوار یعنی یعنی بار دست. دستوار یعنی بار دست. بار دست. مثل گوشوار یعنی بار گوش. آها. مثل کولوار یعنی وار. یعنی به بگیم دستوار. دستوار. چون بار دسته. دست خانومه دستوار اومده. این رو دستوار میکنه و افتان و خیزان رخشم پشت سر این میاد تا میرسن به چشمه. نه. سوی آسمان کرد رودی چنین گفت که داور راستگوی هر آن کس که از یک خدای به پیچر ندارد خرد را به جای. بر این چشمه جای میش نیست، همون قرم دشتی مرا خیش نیست. میفهمی که این به وقتی که شما را پیمایی بکنید در سختی آب خداوند خداوندم شما رو را راهنمایی را میکنه به, به وسایل مختلف حالا اینجا یه میشی دشتیه و شروع میکنه به آفرین گفتن برام قرم بر قرمبر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند گیاه در دشت تو سبز باد. ما بادازه تو بر دل یوز یاد یعنی یوز پلنگ تو رو چه نکنه. تو رو هر کی یا به تیر و کمان شکست کمان باد و تیر روان. بعد از اینکه این کار رو انجام میده زین را از رخش برمیداره رخش رو میشوره آب بهش میده اون بعد خودش آب میخوره. این فرمان ده فرمان جمشیده. که باید جانوران رو یعنی شما واقعا هم اگر یه همچین موقعی پیش بیاد با فرزند خودتون باشی هیچ اول ختون رو نمیخوره اول اون روی کوزه آب باشه حالا امروزابسبت کنم و اول به بچه میدیم ممکن نیست خودتون بخوره تا بچه گفت سیر و بعد گفت سپاس و سیر ش به محبت خود میخورین این کاری که بود که رستم کرد اینا همه نشانه های حرکت درست با باجان جهانه بل. بعد از اینکه آب خورده میشه اینها جایی بر خودش درست کنه و که میخوابه اینجا جایگاهی اجده هاست اجده ها میاد اجده ها میبینید همه آرائه ها ها من در کتاب زندگی ماجرت ثابت کردم که اجده ها یعنی چی اجده یعنی آتش میشون اما اینجا آرائه داستانه اجده ها پیش میاد هل. و خب حرکت بکنه میاد و رخش یادش میاد که رستم بهش گفته که تو نباید جنگ بکنیم میاد و سر رستم حیهو میکن و رو به زمین میزنه و رستم از خواب بیدار میشه اجده ها ناپدید میشه همین که اجده ها ناپدید میشه باز دوباره سه بار اومد و باز ناپدید شد در حقیقت اشاره به فعالیت های آتش بشانه این آتش بشان که زمانی فعالیت میکنه بعد خاموش میشه. ورزش میکنه و بعد خاموش میشه. اما این در این داستان اجداها در حقیقت همون کوانتیشنه که خاموش بر روشه میشیم. مثلا یک نیروی خیلی بزرگ زد زندگی در اطراف خودش هست که باید با او مبارزه کرد خب وقتی که رستم از خواب بیدار میشود دست میزنه به شمشیرشو میبینه که نه هیچی نیست. برای شفت و رخسارگان کرد زر بیابان همه سر به سر بنگرید جز از تیر شب هیچ دیگر ندید بدان مهربان رخش بیدار گفت که تاریکی شب نخواهین نهفت یعنی نمیخوای بخوبی دمش کرد بله. سرم رو همی باز داریده خواب به بیداری من گرفت چه ظا در این باغ سازی چون این رسخی سرت را ببرم به شمشیر تیز پیاده شدم سوی موزندران کشم خشت و کوپال و گرزگران رخش خود شد جمع جنب. میکنی بعد بار سوم میاد پیدا میشه اجنها باست پیدا میشه و اینجا این جزء خیلی زیباسه من خودشم من رو بیان می‌کنم که دفعید. سیوم ره به در آمد سرش ز ببر بیان داشت پوشش برش اینی که خوابیده زیرهره یعنی چی یعنی همواره باید انسان آماده رزم با دشمن باشه حالا این دشمن البته نمی‌خواد دشمن انسانی باشه یا حیوانی باشه بلکه دشمن یعنی اندیشه بد یعنی گفتار بد یعنی دروغ یعنی زشتی چیزهایی که ممکنه جان انسان رو بگیره ما همواره باید زره برتر باشیم یعنی آماده باشیم که جلوه یعنی بدی هایی که وزشتی هایی که در جامعه بشری پیش میاد بیستیم و خودمون پاک نگه داریم نه. خوب سی اون بخواب و در آمد سرشت ببر بیان داشت پوشش برش به قراریت باز اجده های دوشن همین آتش افروخت گویی بدم. چراگاه بگذاشت رخص آن زمان یعنی از چراگاه رفت بیرون ده. نه رفتن برای پهدوان جرات میکرد یارستن یعنی جرد کردن دلشتان شگفتی بدون این بود کش از رستم و عشده ها بین بود حالا هم از رستم میترسه هم از هم از میتر دلش نارمید چو باد دمون نزد رستم دوید خروشید و جوشید و برکند خاک زناعلش نمین شد همه چاک چاک چو بیدار شد رستم از خواب خوش براشفت با با ما باری با رخش چنان ساخت روشن جهان آفرین که پنهان نکرد اژدها را زمین از راه رسید اونجا ها مبارزه شروع میشه رخش و رستم بیاری هم با هدو ها مبارزه میکنن ببینید اینجا چند تا، از چند تا خان گذشت اول خوراک بله دوم از دوم از سختی های راه مثل شیر سوم از تشنگی چهارم از میر های سنگین طبیعی. ما میرسیم به خان پسین. پسین و این خانه زن جادوه خانه پنجام می خانه پسین زن جادو خب حرکت میکنم کنم و از تاریکی می نه اینجا تاریکی نیست میان و می به یک جایی که مغزار و آب روان و درخت و سایه و یه خانه خوراک اونجا آماده است و و روی خان همه کنه خوراک است و یک هم کنار خان گذاشته شده خب تهمتن بسیار شادمان میشه که یک چنین بیابون یک چنین خانی گستده شد پیاده میشه و نخص این تنبور رو به بر میگیره تهمتن مران رو به بر برگرفت بزد رود و گفتارها درگرفت اینو در گرفت. شما بگیم که در ایران و باستان همه یک و از رود یعنی ساز موسیقی رو میشناختن و همگان گون میزدن و من این رو در بین تاجیکا دیدم تاجیکا که بیشتر از اینکه استفاه خانشون تشکیل بشه میومدن همه به یاد نشور من ندیدم تاجیکی که بیاد اینجا ستار ببینه و بر نداره بزنه و همه بلد بودن و اینجا میبینیم که رستم هم همینطور که با اینکه پهلوانه ولی داره رود میزنه که آواره‌ی بینشان رستم است که از روز شادیش بهره کم از همه جای جنگ است میدان و اوی بیابان و کوه هست باستان اوی می و جام و پووی گله گل مغزار نکرده است بخشش بخشش برا کردها او آواز رستم میرسه به گوش زن جادو خودشو مثل نوبهار آرایش میده اگرچه زیبا نبوده ولی خودشو آرش میده و میاد به طرف رستم و رستم توی بیابون میبینه که یک میگوسار جوان و زیبا اومد و وقت بعد سپاس یزدانو میکنه وقتی که سپاس یزدانو میکنه میبینیم که زن جادو چهرش دیگر کنم میشه همون زشتی خودشو نشون میده اینجا گفتار فردوسی اینه یکی جامعه باده به کف برنهاد دادار نیکی دهش کرد یاد تو آواز داد از خداوند مهر دگرگون تر جادو به چه اینجا خداوند مهر میگه ببینید کیش مهر چه این کس هیچکس تا شروعو توجه نکرده ما دو در دوران کیش مهر هستیم آواز رسول خداوند مهر دگرگون سرگشت جادو به چه سیاه که چون نام یزدان شنید طن طن سبق چون به دو بنگرید بیخ بیانداخ چون واضخم بکمن سر جادو آور ناگه به بند اونو با خنجر از بین برد ببینید این یعنی این که در راهی که ما زینه هایی که داریم تیمه کنیم تا برسیم به زینه های بالا بلند ما ممکنه که با جادو و با دروغ روبرو بشیم ما باید بزنیم که بیاری یزدان یعنی اینجا می نام یزدان برد یعنی بیاری یزدان و دروخ و جادو پیروز بشیم نه. شما از ایزان شنونده پیامک ها خیلی زیاده. الان من بخوام بشمرم نیستسی در روز چه ۳ و پ چه پیامد اومده که همش رو نمیتونیم بخوریم و تلفن های شما که الان دوستان دارن آماده می کنند و انشاالله تعدادی رو پخش می زمانم خیلی کم داریم ساعت ۲۲ چه و۶ دقیق هستش ما تا ساعت 22:55 بیشتر وقت نداریم فکر میکنم درست ار میکن سکرا خام داوری تا ۲۲ و پنج۵ بیشتر وقت ما تا هر داد که تونستیم میخونیم بقیش رو انشاالله در آینده خدمتتون عرض می در مورد آیوورزن پرسیدند این چه که بوده در مورد اون صحبت بکنید. آیوبرزن از پرووانان ایران بود در زمان جدیدتر ما موضوع شاهنامه داریم نمیتونیم در آ دفاع کنیم یعنی از دفاع جانوانی او سخن بگیم اه... من نمیدونم سلام اگه میشه از چهار لنگ و هست لنگ صحبت کنیم این چی... این بختیاری دو, دو تایفت تا یکی چهار چار... لنگ نیست چهار لنگه لنگ. برگفتن که این ممکنه که مولیات چون چهار تا مثلا لنگ گسفند بوده این نمیشه این نام خیلی کهانه خیلی از نام ها رو نمیتونیم معنی کنیم من به عنوان مثال مثلا بگم که یه روستا هست در ریه تو در رای توگربار نمیشه دو تایفی بزرگ دو بزرگ هستن. درود بر آقای دکتر جنیدی من البورزی هستم آیا خوزستان هم پهلوانی دارد در ارتباط با شاهنامه در شاهنامه بله پهلوان خوزستان زنگه شاوران بود که ما الان شهر رودی شاور داریم در اونجا منطقه اینا رو کسی به توجه نکرده به از یزدان وقتی که داستان ایران دفتر به همم به دست ایرانیان و خوزستانیان سی می که زننگشااه را پهلوان خوزستان بوده. بادی سوالی که من مطرح میکنم فقط به خاطر اینکه در ادامه همین صحبتهامون هستش بحث امروزمون درمونده هفتخوا مثل در, مونده هفت در باره شاهنامه هست آیا شواهدی وجود دارد که داستان های شاهنامه واقعی است یا ساخته ذهن شاعر؟ من نمیدانم چندباری ببدم نگفته ایناها از زمان باستان بوده وقتی که در زمان عقامانشی در کتاب دهم استر می‌بینیم که نوشتن که آن شب شاهنشاه تا صبح نخوابید و برای اون نامه شاهان پیشین رو می‌خوندند یعنی شاهانامه در زمان عقامانشیان وجود داشته یعنی از دوران باستان رودادها بزرگ رو نوشتن تا رسید به زمان یزدگرد و بعد اینا رو اون چار مو سه مبد خراسانی و پهلوان خراسان ترجمه کردن به فارسی رسید به دست فردوسی و فردوسی اینا رو ترجمه کرده من بارها گفتم مثل که این شنبنده عزیز م... محبا محبا نشیدن. نشیدن. چه کتاب های در باره ایران باستان داریم؟ خیلی کلی خیلی چیز هست از من بر... می کتاب زندگی ماجرت آریایان رو بخونید که کتاب نخستین تفسیر و گزارش شهانام است که من همه اینا رو اونجا شر دادم که نشون داده میشه که تمام این رویدادها رویدادهای درست تاریخ ایران بستون زندگی و ماجراهای آریاییام هست کتاب فروشی ها دیگه ولی با... بله؟ باد باشه کتاب فروشی ها شما کتاب کتابا رو ارزان میدیم زیاد میل ندارم با ما همکاری اون کتاب هر چی گرانتر باشه درصد اونا بیشتر میشه احتمالاً کتاب فروش رو دانشگاه طوری طوس اینا داشته باشن اگه نه از خود بنیاد نیشابوری شرکت کنید چه شماره تلفن بنیاد نیشابوری بعد هشتاد بپرسید 88 نما بهش 27 84 آقای دکتر جنیدی شما در تبیین شاهنامه که در 6 جلد از سوی نشر بلخ بلخ منتشر شده گفتید نیمی از شاهنامه سرودی فردوسی نیست توضیح دهید آقای کیانوش گفته این رو من در یه مصاحبه این گفتم اون مصاحبه گفت پس معلوم میشه که نیمی گفتم در همین حدود است هنوز ما از کامپیوتر پسین نگرفتیم که چند بیت از خود فردوسی چند بیت افسوده است من باز پیشنهاد میکنم برای شما هدف که هر آینده یه بخش دیگه بزنیم تا واسه با افسوده ها برسیم چون این برنامه کم کم داره گسترش پیدا میکنه معلوم میشه که اینا برنامه های اولی رو گوش نکردند بعد من درباره افسوده ها صحبت بکنم که بدونن که افسوده ها رو کی افسود به شنامه و برای چی ما اینها رو افسوده میدونیم در برنامه آینده اگه موفق به این بین بی باز باز پیامک‌های زیادی هست که من نمیتونم حالا زمان خیلی کم داریم سخرخان ببرید تلفن‌ها رو داریم اجازه بدید تلفن‌های دوستان رو که به ما زنگ زدند اون‌ها رو پخش کنیم ما سعی می‌کنیم که یک تخمین هم بکنیم بین پیامک‌ها و تلفن‌های برنامه یه ادالتی هم تو این قضیه رایت را بشه می‌شناویم تلفن‌ها رو پس این یه سپاسگزاری اشخاصانه که پیامک دارم بکنید شما سپاسگزاری من گفتم خیلی خوبه خیلی لطف میکنید ممنونم از شما با سلام و درودهای بسیار و جنب آقای دکتر فریدون جنیدی این ایران پرست بزرگوار. من سوالی از محضر ایشان داشتم یک بار هم این رو پیغام گذاشتم ولی ظاهرا طرح نفرمودید. خواستم ببینم شاهنامه جناب آقای دکتر جنگیر از کجا میشه تهیه کرد؟ سوال اولم و سوال دومم از محضر شریف ایشان این است که آیا ایشان نامه فریدون به رستم فرخزاد رو خطاب برادر خودش در شاهنامه هایی که رای چستوی بازار این مفادش رو می کنند یا اینها جز اضافات هست و شاهنامه سپاسگزارم هم وسوق از تهران تلفن زیادی شده به ما. من این زمان زیادی هم نریم نمیتونیم متاسفانه پخش کنیم. اگر بشه این تلفن ها رو ما نگه میداریم شده در برنامه های آینده پخش می‌کنیم. هر یک شنبه شب آقای دکتر فریدون جوندی تشریف دارند. تماس بگیرید زودتر تماس بگیرید. لطفا با ما از آغاز برنامه که ساعت نهیم شب هست تماس بگیرید که ما بتونیم تلفن ها رو بیشتر پخش کنیم. شماره تلفن بنیاد نیشاابور ۸ ببخشید 8۸ 96. بیستو هفت و چهار هست هشادو هشت نوادو شش بیستو هفت و چهار شما میتونید ارتباط برقرار کنید با بنیاد نشابور و از اونجا بخواید شاهنامه که آقای دکتر جانیدی جامو بایی کردند آقای دکتر به فهمیدن ما... دوم اینی که درود بر شما نامه روشتم فراخوردم همطور که بقیه بخش شاهنامه نامه های داره افسوده در جام پیدا میشه من نامه هست در یک از برنامه ها ما افضاده ها رو جدا می‌کنیم تا بر ایرانیان روشن بشه که چه چیزهایی از خود چه است و چه چیزهای بعدا افضاده شده شد باشید شکر از شما که برنامه ما رو شنیدید سپاسگزارم از شما آقای دکتر فریدون شاد باشید پیروز باشید شما هم همین همکاران ما آقای هیلری عزیز صدا بردار بودند آقای حسینی ارتباطات آقای ابراهیمی هم هماهنگی بودند سکرخان مدلبری تهیه کننده برنامه بودند من هم همیت رضا هدایتی راد سردبیر و مجری برنامه سپاسگزارم از شما شاد باشید باشید پیروز